سوره مریم الله الرحمن ذكر الله که عبده زكرا اذ نادی با رحمت است ها یا این ساد این یاد رحمت آمیز تو نسبت به بنده اش یاست. است آن هنگام که پروردگارش را در نهان ندا و گفت پروردگارا از فرت پیری استخانهایم سوست شده و موی سرم سپید گشته است اما در تمام این مدت هرگز در دعای تو از اجابت محروم نمیشدم من بعد از خودم نسبت به آینده بستگانم نگرانم حالان که همسرم نازاست پس لطف نما و از روی خیش فرزندی جانشین به من عطا کن تا وارث من و آل یعقوب باشد فروردگارا از تو میخوام که او و عمل کردش را مورد رضایت خود قرار دهید ای زکریا ما تو را به تولد فرزندی به نام یحیا بشارت میدهی نامی که قبل از او بر کس دیگر ننهادهی گفت پروردگارا چگونه میتوانم فرزندی داشته باشم در حالی که همسرم نازاست و من نیز پیر و فرتود گشتم گفت پروردگارت این چنین گفته است که چنین کاری بر من آسان است مگر نمیدانی که خودم قبلا چیزی نبودی و من تو را آفریدم زکریا گفت پروردگارا در ارتباط با این امر برای من نشانی قرار بده تا قلبم آرام گیرد و مطمئن شوم خدا گفت نشانه تو این است که در عین سلامت زبانت سه شبانه روز با هیچ کس سخن نگویی آنگاه از مهراب عبادت به سوی قومش روان شد و بر دل آنها افکن که هر صبح و شام خداوند بزرگ را تسبیح کنند ای یا این کتاب را با قدرت بگیر و نگهداری کن هرچند که ما به او در کودکی حکمت و دانایی عطا کردیم و از جانب خودمان او را مورد لطف قرار دادیم و پاکیزهش گرداندیم زیرا او حرمت خدا را نگاه می داشت و به پدر و مادرش نیکی می کرد و اهل ظلم و نافرمانی نبود پس سلام بر او روزی که متولد شد و روزی که می میرد و روزی که دوباره زنده برانگیخته می شود در این کتاب از مریم یاد کن آنگاه که از خانوادهش فاصله گرفت و به ناهیه طلوع آفتاب آمد سپس پرده میان خود و آنها کشید آنگاه ما روح خود را به صورت یک انسان کامل به سوی اون فرستادیم مریم گفت اگر انسان خداترس ترس و خدا شناسی هستی بدان که من از تو به خدای رحمان پناه میبرم. گفت من فرستاده پروردگارت هستم تا فرزند پاکیزهی به تو عطا کنم مریم گفت چگونه بچه دار در حالی که هیچ مردی با من تماس نداشته و بدکاره نیز نبودم گفت پروردگار تو اینچنین گفته که این کار بر من آسان است ما این فرزند را معجزه و رحمتی از جانب خودمان برای همه جهانیان قرار می دهیم و این یک فرمان قطعی است سپس باردار شد و با فرزندش به مکانی دور دست رفت درد زایمان باعث شد تا کنار درخت نخلی پناه بگیرد در حالی که می گفت کاش قبل از این مرده بودم و از خاطرها محف می گشتم ناگاه از زیر پای او ندای آمد که می گفت قمگین ما باش که پروردگارت. چشمی در زیر پایت نهاده است تنه نخ را تکان بده تا خرمایی تازه بر تو فروری زد بخور و بیا شام و چشمت را روشن دار و اگر بشری را دیدی بگو من برای خداوند رحمان روزه ای نعذر کردم که امروز با انسانی سخن نگوید آنگاه تفتش را در آوش گرفته به سوی قومش آمد آنها گفتند ای مریم تو مرتکب کار بسیار بد و عجیبی شده ای ای خواهر از این کار تو تعجب میکنیم در حالی که نه پدر تو مرد بدی بود و نه مادرت بدکاره مریم به طفل اشاره کرد تا از او بپرسند اما آنها گفتند چگونه با تفلی که در گهواره سخن بگویی طفل گفت من بنده خدایی هستم که به من کتاب عطا کرده و برم گردانیده است و مرا در هر جا که باشم ماغه برکت گردانیده و تا زنده به اقامه نماز و پرداخت زکات توصیه نموده است و نیز مرا توصیه کرده که نسبت به مادرم رفتار نیک داشته باشم و مرا چون ظالمان و سنگ دلان نخواسته است و سلام بر روزی که متولد شدم و روزی که میمیرم و روزی که دوباره زنده می میشدم این از ابن ای مریم همان کلمه حقی که به آن شک و تردید داشتند الله یتخذ لما يقول و الله وربكم فاعبدوه هذا صراط خداوند هیچ فرزندی اختیار نکرده است پاک و بی است خدا چون اراده کاری کند فقط میگوید موجود شو بیدرنگ موجود میشود. الله پروردگار من و پروردگار شماست پس فقط او را پرستش کنید که این راه راست و درست است اما گروه ها با یکدیگر اختلاف کردند پس وای به حال منکران حقیقت در لحظه دیدار روز بزرگ قیامت چه شنوا و بینا شده در آن روز که دوباره نزد ما می آیند. اما امروز ظالمان در گمراهی آشکار هست. آنها را نسبت به آن روز هستامیز هشدار ده آنگاه که کار پایان پذیرد، آنها هنوز در قفلت و بی ایمانی به سر بدون تردید ما وارث زمین و هر که بر آنها هست می باشید. و همه به سوی ما بازگردانده خواهند شد در این کتاب از ابراهیم یاد کن همون که پیام بری راست گو بود هنگامی که به پدرش گفت ای پدر چرا چیزی را که نه و نمی بیند و هیچ نیازی از تو برطرف نمی کند پرستش میکنی؟» ای پدرم علمی نصیب من شده است که تو از آن بیخبر و بی نصیبی پس مرا پیروی کن تا تو را به راه درست و نجات بخش هدایت کنم ای پدرم شیطان را پرستش مکن زیرا شیطان نسبت به خدای رحمان نافرمان بوده است ای پدرم از اینکه شما دوستدار شیطان باشید و گرفتار عذاب الهی شوید نگرانم گفت ای ابراهیم آیا از خدایان من بیزار شده ای؟ اگر از این کار دست بر نداری قطعا سنگ سارت می کنن فعلا برای مدتی طولانی از من دور شو. ابراهیم گفت سلام بر تو پدر برای تو از پروردگارم آمرزش خواهم خواست زیرا او به من لطف و مهربانی دارد من از شما و از آن که به جای خدا می دوری می کنم امیدوارم دعایم در پیشگاه خداوند بدون جواب نمامد و چون از آنها و آنچه به جای خدا می دوری کرد به او اسحاق و یعقوب را عطا کردیم و همه را به پیامبری دستندیم و آنها را مشمول رحمت رحمتمام قرار دادیم و نام نیک آنها را شهره آفاق کردیم در این کتاب از موسا یاد کن که بندهی مخلص و ای پیامبر بود و نادیناه من جانب قوری الایبن و قربناه نجیه. و از سمت راست کوه طور موسا را خطاب نموده و به خود نزدیک کردیم تا اسراری با او در میان بگذاریم و از روی رحمت من هارون را که او هم پیامبر بود در اختیارش قرار دادیم. در این کتاب از اسماعیل یاد کن که او مشهور به وفاداری و فرستادی پیامبر بود کسی بود که اهلش را همواره به اقامه نماز و پرداخت زکات امر می کرد. و بیشک او مورد رضایت پروردگارش بود در این کتاب از ادریس یاد کن زیرا او نیز پیامبری بسیار راستگو بود و به دین سبب او را جایگاهی رفیع عطا کردیم. همه آنها کسانی هستند که خداوند نعمت خیش را شامل حالشان کرده است. پیام پیانبران و فرزندان آدم و همه کسانی که با نوح سوار کشتی کردیم و فرزندان ابراهیم و اسرائیل و هر کس دیگری را که ادایت کردیم و انتخابشان کردیم تا آیات خدای رحمان بر آنها تلاوت شود همان کسانی که چون آیات خدای رحمان را شنیدند به سجده افتادند و گریه آسمانه زدادند ام ام اما کسانی بعد از آنها جانشینشان شدند که نماز را مطروب گذاشتند و به دنبال شهوات ریش رفتند به زودی جزای گمراهی را خواهند دید مگر کسانی که از گذشته زشت خود توبه کنند و به خدای بزرگ ایمان بیاورند و دست به کار نیک زنند بدون تردید آنها به بهشت وارد خواهند شد و هیچ ستمی بر آنها نخواهد رفت آن آنهم به بهشت های جاودانی که خدای رحمان به بندگانش وعده داده است هرچند آن را ندیدند اما بدانند که بعدی او تحقق یافتنی است لا يسمعون فیها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فیها بکوتا و عشیا تلك الجنب در آنجا جز سخن از صلح و سلام و امنیت هیچ کلام لغب و بیهوده دیگری نمی بر و رزق و روزیشان هر صبح و شام آماده است این چون این بهشتی متعلق به بندگانی از ماست که حرمت اوامر خدا را نگاه دارند. و ما فرشتگان جز به امر پروردگارت فرود نمی آن آنچه پیش روی ما و پشت سر ما و حتی در این میان است از آن خداست که پروردگارت چیزی را فراموش نمیکند او پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست میباشد پس فقط او را بپرست و بر این پرستش صبر و استقامت داشته باش آیا حتی هم همنام همترازی برای او می شناسی؟ با این وجود انسان می گوید آیا وقتی مردم دوباره زنده خواهم شد؟ آیا انسان به یاد نمی آورد که قبلم چیزی نبود و ما او را خلق کردیم؟ قسم به پروردگارد که همشان را روزی با شیاطین جمع کنیم و آنها را در اطراف جهنم به زانو در آوریم آنگاه از میان هر گروه کسانی را که بیش از همه نسبت به خدای رحمان سرکشی کرده جدا می‌کنیم. و این ماهیم که سزاوار ترین آنها به آتج دوزخ را خوب می شناسیم. همه شما وارد دوزخ خواهید شد و این یک امر حتمی و قطعی از سوی پروردگارت است. آنگاه کسانی که حرمت عوامر خدا را نگاه داشتند نجات خواهیم داد و ظالمان به در آمده را در دوزخ رها خواهیم کرد و که آیات روشنگر ما بر آنها خانده شود منکران حقیقت به اهل ایمان گرویند کدام یک از دو گروه ما یا شما جایگاهشان بهتر و محفلشان گرمتر و زیباتر است چه بسیار اقوامی پیش از آنها نابود کردیم در حالی که هم ثروتمندتر بودند و هم خوشمنظرتر ای پینبر به آنها بگو خدای رحمان به کسی که در گمراهی است مهلت میدهد تا آنگاه که وعده عذاب الهی را دریابد یا در همین دنیا و یا در روز قیامت آن وقت خواهند فهمید چه کسی جایگاهش بدتر و لشکرش ناتوانتر است اما کسانی که به راه حق و نجات شده شدهاند خداوند بر هدایتشان می افزاید. زیرا دستاوردهای خوب و نیک نزد پروردگارت بهتر از هر چیز دیگر است چه پاداشش بیشتر و هم مندگارتر است آیا ندیدی آن کس را که آیات ما را انکار کرد و گفت به من مال و فرزندان زیادی عطا خواهند شد آیا از غیب خبر دارد و یا عهد و پیمانی از خدای رحمان گرفته است، این چون این نیست ما آنچه را میگوید مینویسیم و همباره در عذاب گرفتارش میسازیم و چیزهایی را که به آن دل بسته است، از او میگیریم تا تک و تنها نزد ما بیایند زیرا آنها خدایانی به غیر الله اختیار کردند تا به گمان خود مایه عزتشان باشند این چون این نیست به زودی خدایان دروغین آنها عباداتشان را انکار خواهند کرد و به زدیت با آنها قد علم خواهند نمود آیا نمی‌بینی که ما شیاطین را به سوی منکران حقیقت فرستادیم تا آنها را شدیدن وسوسه کنند پس در مورد آنها عجله مکن ما تک تک اعمالشان را مد نظر داریم در آن روزی که ورمان گزاران الهی را به سوی خدای رحمان گرد آوریم و مجرمان را تشن لب به سوی جهنم سوق دهیم در آن روز هیچ کس مقام شفاعت کردن ندارد مگر کسی که عهدی از خدای رحمان گرفته است مرتقان گفتند خدای رحمان فرزندی اختیار کرده است چه مطلب زشت و زننده‌ای گفتید چنان زشت گبتو نزدیک است آسمان ها از آن متلاشی شود و زمین شکافته گردند و کوه ها زیرا آنها مدعی شدند که خدای رحمان دارای فرزندی است در حالی که سزاوار خداوند رحمان نیست که فرزندی اختیار کند همه کسانی که در آسمان ها و زمین هستند بندگان خدای رحمانند تک تک آنها را شمارش کرده است و تعدادشان را می دانند. همگی آنها در روز قیامت به سوی او باز خواهند گشت در حالی که هیچ چیز با خود ندارند و تک و تنها هستند کسانی که به حقاقی ایمان دارند و عمل کردشان سراسر خوبی و خدمت است، خدای رحمان آنها را محبوب همه گرداند ما قرآن را بر زبان تو آسان و روان کردیم تا به واسطه آن به کسانی که حرمت خدا را نگاه میدارند بشارت دهی و به دشمنان لجوج هشدار دهی چه بسیارن مردمانی که قبل از آنها نابود کردی آیا چیزی از آنها احساس می یا کمترین صدایی از آنها می و قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا صدق الله خداوند بود خاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و علیه و سلم